دوستان، آیا تا حالا به فکر افتادید که بدونید کلیساها در بد و شروع چه شکلی بودن؟ اگه علاقه من به درس امروز هستید، با دقت گوش کنید. به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. در درس امروز، ما درباره خصوصیات اولین کلیسا یهد جدید خواهیم شنید و همونها باید مشخصات کلیساهای امروزی ما باشند. پس با دقت گوش میکنیم تا ببینیم مشخصات مهم کلیسای امروز ما باید چی باشه با هم به درس امروز گوش میکنیم در این کلاس ما بررسی کل کتاب مقدس رو به صورت مقدماتی انجام میدیم این دوره با بررسی کتاب پیدایش شروع شد و اکنون ما در حال بررسی پنجمین کتاب عهد جدید کتاب اعمال رسولان هستیم متشکرم که باز هم با ما همراه هستید وقتی که به بررسی این کتاب تاریخ پیدایش کلیسا ها رسیدیم من شما را تشویق کردم که به هدفهایی که به کلیسا داده شده و به هایی که به کلیسا داده شده و به قوتی که به کلیسا داده شده توجه کنید و نحوه عمل کلیسا را ملاحظه کنید. منظورم از عمل کلیسا چیزهایی مثل موعظه رسولان در کلیساها و کسانی هستند که کلیساها رو تشکیل دادند. کتاب عمل رسولان تماماً در مورد مردم است. همینطور ازتون خواستم که چیزهایی مثل جفاهایی رو که از بیرون به کلیسا میشد و مشکلاتی که از درون کلیسا هم مد نظر قرار بدید وقتی میبینید رهبران کلیساهای جدید از احده اون مشکلات برمیان الگوهای خاصی هم پدیدار میشه وقتی اون الگوهای کلیسا در کتاب اعمال رسولان به وجود میان مثالهایی رو که به منظور راهنمایی ما در این کتاب تاریخ اومده ملاحظه کنید باز هم یادآوری میکنم که وقتی به نوشته های تاریخی در کتاب مقدس میپردازید، باید دنبال و ابرت ها بگردید. در کتاب اعمال شما اصولاً سرمشخای زیادی رو میبینید. این سرمشخا در فرم الگوهای کلیسا به ما داده میشه. الگوهایی که کار کرده کلیسا با قوت پنتیکاست و مقابله با مشکلات و جفاها رو در نسل اول کلیساها به ما نشون میده. من الگوهای کلیسا رو به عنوان آثار مرعی انگشت کلیساهای نامرعی توصیف کردم. اساس چیزی که کلیسا به لحاظ مرئی باید باشه الگوهای زیاد دیگری هم در کتاب اعمال هستند که باید ملاحظه کنید. مایلم تشویقتون کنم که وقتی 28 با به کتاب اعمال رو میخونید این الگوها رو ملاحظه کنید. مثلا الگوی هدیه دادن رو ملاحظه کنید که از همون بعد به تاسیس کلیساها بلافاصله بعد از پنتیکاس برقرار شد. هیچ کس نمیخواست مالک چیزی باشه. کسانی که دارایی داشتند اون رو میفروختند و بهای اون رو نزد رسولان میآوردند. تا در رفع نیازهای بقیه اعضای کلیسا مشارکت کنند. این سوسیالیزمی کاملا خالص بود این نشانه چیزی هست که کتاب مقدس به اون تقدیس میگه کلمه مقدس یعنی چیزی که متعلق به خدا هست بلافاصله بعد از پنتیکاست این مردم نوعی تقدس رو تجربه کردن و برایند اون یا نشانه اون این واقعیت بود که مردم نمیخواستن مالک چیزی باشن بنابراین اونها بیش از ده یک بیش از هدایا و بیش از هدایای قربانی تقدیم می کردن. به عنوان نشانه تقدس شخصیشون هرچی که داشتن تحت تاثیر پنتیکاست تقدیم می کردن. در کتاب اعمال همینطور الگوی ناعتاعتی مدنی رو ملاحظه می کنید. این الگوی جالبی هست. ما در انجیل می خونیم که ایسا می فرماید مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا. یادتونه که از پرسیده بود پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه عیسی به خوبی از پس این موزل بر اومد چون می‌دونست که اونها قصد دارند از او بحانه ای بگیرند و اگر می‌گفت نه رومیان او را رو دستگیر می‌کردند و اگر می‌گفت بله متهم به جانبداری از رومیان در مقابل قوم خدا می شد و به همین سبب گفت برای من سکه‌ای بیاورید و سکه را به آنها نشون داد و پرسید تصویر چه کسی بر سکه نقش شده اونها جواب دادن قیصر و عیسی پاسخ داد پس مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا چیزی که او می گفت این بود روی این سکه تصویر قیصر حک شده پس اون رو به قیصر بدید اما شما نقش خدا را بر خودتون دارید پس خودتون رو به خدا تقدیم کنید و پول رو به قیصر بدید خدا چیزی رو که متعلق به قیصر هست نمیخواد اما زمانهایی هست که قیصر چیزی رو که متعلقه به خداست میخواد هر وقتی سر چیزی رو بخواد که مال خداست شما نمیتونید اون رو به قیصر بدید عیسی به رسولان فرمان داده بود که نام و انجیل عیسی مسیح رو موعظه کنن و تعلیم بدن حالا وقتی مقامات مذهبی و دولتی به اونها فرمان دادن که دیگه از عیسی حرفی نزنن اولین باری که این اتفاق افتاد رسولان پاسخ دادن ما ماهیگیران گیران عامی هستیم در که این موضوع برای ما سخته که بدونیم اطاعت و نافاتیعت مدنی چیه این تصمیمش با شما هست اما میدونیم که عیسی به ما گفته موعظه کنیم و تعلیم بدیم و ما موعظه خواهیم کرد و تعلیم خواهیم داد بعد با هم دعا کردند دفعه بعد که با مقامات مواجه شدند و بهشون گفته شد که دیگه از نام عیسی حرفی نزنید اونها بلافاصله پاسخ دادند ما باید خدا رو اطاعت کنیم نه انسان رو این در واقع اطاعتی مدنی بود زمانهایی هست که مسیحیان باید ناهتاعتی مدنی بکنن در آلمان نازی یک خادم پروتستان به نام دیتریش بانهوفر اطاعت مدنی رو حتی در زیر سلطه هیتلر مواظب می کرد اما وقتی در یکی از زندان های هیتلر زندانی شد در نامه‌ای که از زندان برای مادرش نوشت میبینیم که عقیده اش در این مورد عوض شده بالاخره او محکوم به مرگ شد چون در یکی از توته های ترور هیتلر دست داشته در کلیساهای عهد جدید ما میبینیم که نافرمانی مدنی شکل گرفته وقتی به باب پنج اعمال رسولان میرسید الگوهای انزبات کلیسا رو هم میبینید همونطور که در جلسه قبل گفتم نه تنها جفاها از خارج وجود داشت بلکه مشکلاتی از درون هم بود نسل اول مسیحیان تصمیم گرفتند دارایی هاشون رو بفروشن و بهای اون رو نزد رسولان بیارن زن و شوهری به نام حنانیا و سفیره بودند که مزرعه خودشون رو فروختن. اونها به رسولان در مورد بهای زمین دروغ گفتند در این داستان پتروس بسیدتی نشون داد که خارغلاده بود. وقتی هنانیا آمد و گفت که زمین رو به فلان قیمت فروخته، پتروس گفت، ای هنانیا، چرا اینطور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند که به روح القدس دروغ بگویی و مقداری از پول زمینت را نگاه داری؟ تو نه به انسان، بلکه به خدا دروغ گفته ای. و ما میخونیم که هنانیا درست در همون جا میفته و میمیره و مردان جوان میاند و او رو میبرند کفن میکنند و دفت می کنند. بعد زنش میاد و پتروس میپرسه به ببینم آیا زمین را به همین مبلغ فروختید و او جواب میده بله به همین مقدار و پتروس میگه چرا هر دو هم دست شدید که روح خداوند را بیازمایید کسانی که شوهرت را دفن کردند کردن همکنون در آستانه در هستند و تو را هم خواهند برد در همان لحظه او پیش پاهای پتروس افتاد و جان داد تعجبی نداره که چرا مسیحیان اولیه این همه از خدا میترسیدند فکر می کنم به همین دلیله که مردم این همه از واعظین این می ترسن. من تقریبا متنفرم از اینکه به کسی بگم واعظ هستم. یه بار توی یه مهمانی به خانه می گفتم که وعز هستم او داشت با چوب سیگار بلندی سیگار میکشید. وقتی به او گفتم وعث هستم اونقدر دست پاچه شد که سیگار رو فوت کرد و از چوب سیگار افتاد. من همیشه از این تعجب می کنم که چرا مردم وقتی میشند من وعث هستم این همه دست میشن. شاید این بر به پتروس و واقعیت انزبات کلیسا. البته این از مشخصات انبیای قدیم هم بود که مردم از انبیا هم میترسیدند دو چیز بود که کلیساهای های اولیه رو پاک نگه داشته بود. جفاهای بیرونی که کلیسا رو هرست می کرد و اون را خالص تر میکرد. مردم اگر واقعا پیروان سرسپرده عیسی ن به کلیسه های اولیه نمی پیپستند. جفا کلیسه رو خالص نگه می داشت. امروزه هم در جاهایی که کلیسا تحت جفا هستند همین مسئله صدق میکنه کلیسا ها رو خالص میکنه. و مطلب دوم انضبات بود انزبات کلیسا هم کلیساها ها رو خالص نگه می داشت. وقتی کتاب اعمال رو می خونید، اون الگووی انضبات رو در کلیسا های جدید مشاهده خواهید کرد. در اعمال با بش شما الگووی مهم دیگری رو میبیید اون الگویی هست که تفاوت بین طایای روحانی شبانی و اتایای روحانی عملی رو مشخص میکنه روح القدس در نتیجه واقعی پنتیکاست وارد زندگی های شاگردان ایسای مسیح شد. پنتیکاست نتایج بسیار فراوانی داشت. روح القدس شاگردان را با عطایای روحانی تجهیز کرد و اون عطایای روحانی به شاگردان این توانایی رو داد که وارد خدمت روحانی بشن. این تعلیم بسیار زیبایی هست که می‌بینیم در سراسر عهد جدید ثبت شده. عطایای گوناگونی به رسولان داده شد و در نتیجه اون عطایا رسولان خدمات متنوعی داشتند. وقتی مردم پر از روح القدس میشن یعنی توسط روح القدس کنترل میشن یکی از اولین نتایجش اینه که با همدیگه متفاوت میشن و عجیبه که با معکدن به مردم طور دیگه ای پیشنهاد میکنیم و میگیم اگه شما پر از روح بودید مثل من میشدید و این نشون میداد که شما پر از روح هستید ما این رو در کلیساهای اولیه نمی‌بینیم کتاب مقدس میگه نه نه این حقیقت نیست اگه من و شما پر از روح باشیم چیزی که مسلمه اینه که منو شما متفاوت از هم خواهیم بود من عطایا و خدمتی خواهم داشت که با عطایا و خدمت شما فرق داره پولس رسول به ما میگه که عطایای روحانی به جای روح القدس کار میکنن به عبارت دیگه روح القدس توسط عطایا نقش خودش را انجام میده و عمل میکنه روح القدس به قوم خودش عطایا میده و اون عطایا به اون افراد قابلیت خدمت میده تمامی این عطایا عطایای روحانی هستند اما بعضی از این عطایا شبانی و برخی عطایای عملی هستند عطای شبانی مربوط به کسانی هست که در خدمت کلام خدا هستند شبانان معلم شبان معلم شبانی که تعلیم میده یا معلمی که شبانی میکنه اعمال 242 این مفهوم رو شرح میده شبان معلم کسیه که به شما تعلیم میده اما در عین حال شما با او رفاقت میکنید به این ترتیب شبان معلم شما رو شبانی میکنه و به شما مشورت میده. بنابراین در کتاب اعمال معلم شبان یا معلمی که به شما مشورت میده گفته شده که باید عطیه شبانی دعا و خدمت کلام رو داشته باشه. در کتاب اعمال باب شش کلیسا رشد میکنه. در ابتدا می بینید که وقتی در روز پندیکاست هزاران نفر از مردم تبدیل میشن شن اونا به کلیسا می پیبندن. اما وقتی به باب شش می رسید می بینید که اونها افزایش پیدا می کنند. اونها جماعت هستند که، در گروه های جمعی سازماندهی می شن. اونها بهای به فروش املاکشون رو میدادند و در یک گروه اجتماعی مشترک پاک زندگی میکردن. ما میخونیم که اونها یک برنامه خدمات غذایی تدوین میکنن. وقتی شما هزاران نفر رو دارید که با هم زندگی میکنن و باید روزانه چندین نوبت غذا بخورن، این نیازمند سازماندهی و مدیریت غذایی هست. رسولان درگیر این خدمت بودند. در اعمال شش می میبینید که الگوی بسیار مهمی به وجود میاد در باب شش اینطور آمده پس آن دوازده رسول کلیه شاگردان را احضار کردند و گفتند شایسته نیست ما به خاطر رساندن قضا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمانیم پس ای برادران از میان خودتان هفت نفر از مردان نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنها را معمور انجام این وظیفه بنماییم و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خدا خواهیم نمود. با انجام این کار، اونها مبنای خدمتی رو بنا نهادند که امروزه به اون کمک شبانی یا شماسی میگیم. این مسئولیت شماسان منتقب بود که کارهای اداری کلیسا رو انجام بدن تا کسانی که عطیه شبانی دارن، خودشون رو وقف خدمت کلام و شبانی بکنن. یادتونه جد اون در کتاب داوران تنها با 300 نفر برصدها هزار نفر از ها غلبه کرد کلید پیروزی اونها در آیه‌ای در کتاب داوران توضیح داده شده که میگه اون 300 نفر تماما سرسپرده ی بودند همه اونها در اطراف اردوگاه در جای خودی ایستادند و سپاه عظیم وحشت زده به هر طرف میدویدند و فریادکنان فرار می‌کردند چیزی که اعمال 6 پیشنهاد می‌کنه اینه که برای هر شاگردی که از روح تعمید یافته هر کسی که مس و عطایای روح القدس رو داره و قادر به خدمت هست در بدن مسیح جایی وجود داره تمام این کسانی که مس نیروبخش روح القدس رو دارن دارای عطایای روح هستن بعضی از اونها عطایای خدمت عملی رو دارن و بعضیها عطایای خدمت شبانی اگر الگوی عطایای روحانی کسی مانند مریم هست و عطیاشون شبانیه خدمت اونها هم شبانی خواهد بود و اونها اشخاصی مثل مریم خواهند بود اما اگر الگوی اونها مثل مارتا هست یعنی اعتیه خدمت عملی دارند که عهد جدید اون رو به عنوان کمک توصیف میکنه و یا کارهای دفتری اونها میتونن مثل مارتا خدمت کنند این عطایا به اندازه همون عطایای تعلیم و موعظه و بشارت روحانی هستند به هر حال هر شاگردی باید در جای خودش بیسته مارتا باید مارتا باشه و مریم باید مریم باشه وقتی کلیسای اولگو رو به کار بگیره برکت خواهد یافت و رشد خواهد کرد آیا شما الگوی عطایای خودتون رو میشناسید؟ وقتی به این سوال پاسخ دادید بعد از اون در جای خودتون بیستید و خودتون رو تماماً وقف اون عطیه و خدمتی بکنید که از اون عطیه نشعت میگیره. در این صورت کلیسای محلی که شما عضوش هستید برکات بزرگی میگیره چون که شما در جای خودتون ایستادید و عطیه روحانی خودتون رو به کار بردید ما الگوی رو ملاحظه می می‌کنیم که در کلیسای عهد جدید وجود داره. الگوی این بود که کسانی که عطیه روحانی شبانی دارند، باید خودشون رو وقف دعا و خدمت کلام بکنن. برای تحقق این باید کسانی که عطیه روحانی عملی داشتن به امور عملی کلیسا پرداختن. سالها پیش کلیسایی که من شبانی اون رو می‌کردم رشد می‌کرد و وقتی اون کلیسا بزرگتر میشد خیلیها به من نصیحت می‌کردند که دوره‌ای بگذرونم تا یاد بگیرم چطور مجری موثری باشم و یاد بگیرم چطور تجزیه تحلیل کنم، سازماندهی کنم، نمایندگی بدم، نظارت کنم و این قبیل مهارت‌های شغلی رو یاد بگیرم. وقتی کلیسا رشد می‌کنه من تعجب می‌کنم چرا ایده پیشنهاد می‌کنند که شیوه‌های دنیایی رو به کار بگیریم. بعضی ها میگن کسانی که در کلیسا خدمت می‌کنند باید از همون اصول و روش اداره شرکت‌ها پیروی کنند. چنانکه گویی کلیسا تنها یک شغل هست. وقتی کلیسا بزرگ میشه با مسائل زیادی مواجه میشه. بسیاری از کلیساها های کلانی دارن. این نشون میده که اونها داد های زیادی خواهند داشت. چه کسی باید این ها را انجام بده؟ راستشو بگم من فکر میکنم کسانی که کار شبانی میکنند نباید در این قبیل کارها درگیر بشن. من معتقدم که شبانان و واعظین باید خواندگی خودشون رو بدونن و از جماعت بخوان کسانی رو که روحانی خدمت عملی دارند. برای انجام این کارها انتخاب کنند و بگن ما خودمون رو وقت دعا و خدمت کلام خواهیم کرد تا هر کسی در جای خودش قرار بگیره الگویی رو که در باب شش کتاب اعمال پیدا میشه ملاحظه کنید اونها تصمیم گرفتند شماسانی انتخاب کنند و گفتند شایسته نیست ما به خاطر رسانیدن غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمونیم پس ای برادران از میان خودتان هفت نفر از مردان نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت رو انتخاب کنید تا آنان را معمور انجام این وظیفه بنماییم و ما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خدا خواهیم کرد وقتی کلیسا تصمیم میگیره و این قدم را برمی‌دارد ما می‌خونیم که پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش یافت و بسیاری از کاهنین نیز به مسیح ایمان آوردند کلیساهایی که از شبانان انتظار دارند تمام طول هفته را به عنوان یک مدیر اجرایی خدمت کنند نسبت به اونها بی ادالتی بزرگی می‌کنن ما از شبانان میخواهیم مسئولیت تمام امور کلیسا رو به عهده بگیرن چرا که به اونها حقوق میدیم و معتقدیم که باید همه چی رو به عهده بگیرن اگه لامپی باید جا به جا بشه اگه مشکلی توی حیات کلیسا باشه مهم نیست که مشکل چیه این مسئولیت شبان است بعد وقتی صبح یکشنبه پشت تریبون میسته تعجب می کنیم که چرا موعظه او قوت بزرگی نداره و تعجب می‌کنیم که چرا تعداد شاگردان افزایش پیدا نمی کنه؟ این به این دلیلی که واعظ در تمام طول هفته مدیر اجرایی کل کلیسا بوده او نمی تونه هم شبان باشه و هم رئیس کارهای اجرایی به جمله دعا و خدمت کلام توجه کنی این تنها خدمت کلام نیست بزرگترین رویداد تاریخ کلیسا تجسم بود یعنی اونجا که کلمه جسم پوشی وقتی شخصی با عتیه شبانی کلام خدا رو تعلیم میده انتظار میره چه اتفاقی بیفته کلام کلام ازلی تبدیل به جسم میشه قابل درک میشه کلام زنده میشه اغلب اوقات وقتی کسی کتاب مقدس رو تعلیم میده کلمه تبدیل به کلمه میشه تبدیل به آیین میشه تبدیل به الهیات میشه و این شاگردان رو زیاد نمی کنه. و معمولا قوت چندانی هم نداره میشه گفت که این مقداری اطلاعاتی که رد و بدل میشه و وقتی کلام تبدیل به اطلاعات میشه، اتفاق چندانی نمیفته. اگه تعلیم کلام خدا قراره که عطیه روح القدس باشه و باید همینطور باشه، پس باید خدمت کلام با دعا هم راه باشه و لازمه این خدمت تمام وقت شبانی معلمی هست. وقتی شبان جوانی بودم سعی داشتم بر روی جماعتم تأثیر بذارم. شبانه قبل از من با اعضا ملاقات نمی کرده. اگه میخواستم تأثیر زیادی بذارم، باید بیشتر، باید بیشتر به ملاقات مردم میرفتم. ساعت ده صبحیه دوشنبه به ملاقات مردی رفتم که بانکدار بود هرگز این ملاقات رو فراموش نمیکنم بعد از حدود پنج دقیقه بیقراری او رو کرد به من و گفت پسرم من مشغولم یعنی واقعا سرم شلوغه اگه تو می دونستی چه شغلی داری تو هم باید سرت شلوق بود هرگز ساعت ده صبح توی بانک به دیدن من نیا. او گفت وقتی من روز یکشنبه به کلیسامیام میخوام پشت تریبون مردی رو ببینم که برای من کلامی از خدا داره اگه تو میخوای اون مرد باشی بهتر تو هم مشغول کار خودت باشی راستشو بگم من توبیخ شدم و درس بزرگی گرفتم او با روشی زیرکانه مطلبی رو برای من توضیح داد که اون موقع نمیفهمیدم حالا میفهمم که او داشت وظیفه منو برام توضیح میداد یک شبان معلم باید کلامی از خدا برای مردم داشته باشه و برای این کار او باید دعا کنه و در خدمت کلام باشه او باید سراسر هفته و خودش رو وقت کلام خدا کنه تا اون پیام ازثر بذاره. این الگووییه که در کتاب اعمال شکل گرفته و الگویی بسیار مهمه. این تفاوت بین کسانی هست که اطتی شبانی دارند و کسانی که تییه خدمت عملی دارن. وقتی هر کسی الگوی عطایاش رو بدونه و در جای خودش قرار بگیره اون وقت کلیسایی خواهید داشت بدنی خواهید داشت که فعال و پویا هست. الگووی دیگری که در کتاب اعمال به چشم میخوره شهید شدن هست. در کتاب اعمال باب هفت استیفان جانش رو به خاطر موعظش میده. شهیدان بذرهای هستند که باعث رشد کلیسا میشن. در کتاب اعمال این رو ملاحظه میکنید. جفا از بیرون نه تنها کلیسا رو تهذیب میکنه بلکه باعث رشد اون میشه. خون شهید بذر کلیسا بود. وقتی استیفان به خاطر ایمانش میمرد، شاول ترسوسی لباس سنگ سار کنندگان رو نگه داشته بود. شاول ترسوسی که به ترین مسیحی و فعالترین خادم کلیسای عیسی مسیح تبدیل شد، شاید تحت تأثیر شهادت استپان قرار گرفته. این هم الگویه که باید ضمن مطالعه اعمال رسولان ملاحظه کنید. در کتاب اعمال، کاری رو که شمعون جادوگر میکنه ملاحظه کنید، پتروس برای سرکشی به خدمت فیلیپوس به سامره میره و در اونجا با مردی به نام شمعون ملاقات میکنه کنه که جادوگر هست. شکسپیر گفته چیزهای زیادی بین زمین و آسمان هست که انسان حتی نمیتونه در خواب هم ببینه. کتاب مقدس نمیگه هیچ چیز مثل جادوگری نیست، بلکه برعکس به ما میگه به هیچ وجه به این قبیل کارها اهمیت ندید. شمعون به مدد ارواح شریر کارهای العاده انجام میداد و وقتی دید رسولان بر مردم دست میذارن و اونا شفا پیدا می و روح القدس رو دریافت می خواست که از این راه برای خودش کسب و کاری راه بندازه و از این رو پولی نزد رسولان میاره و به اونها میگه اون قدرت رو به من هم بدید تا من هم بر هر که دست میذارم روح القدس رو بگیره. خیلی از ترجمه‌ها حرفای پتروس رو کمی تلطیف کردن و نوشتن زرت با خودت نابود با. اما در اصل چیزی که پتروس به شمعون میگه اینه خودت و پولت به جهنم برید. شمعون پولش رو برداشت و پتروس پیش بینی کرد که به شومی در انتظار او خواهد بود چون فکر کرده روح القدس رو میشه با پول خرید و بالاخره میبینیم که شمعون به اونها میگه برای من دعا کنید که این چیزها برام اتفاق نیفته اگرچه شمعون اعتراف ایمان کرده و تعمید گرفته بود اما واضح بود که ایماندار نیست به خاطر این داستان و رفتار شمعون که سعی میکرد با پول روح القدس رو بخره امروزه در کلیساها به کسانی که سعی دارن با پول برای خود محبوبیت کسب کنن شمعونوار وار میگن زمانهایی در دوره تاریک کلیسا بوده که شما میتونستید مقام اسقف اعظمی رو با پول بخرد. مقام اسقف دارای قدرت سیاسی بوده و مردم به اون مقام تمام میکردند. به طور کاربردی امروزه ما هم در کلیسا همون کسانی رو میبینیم که مثل شمعون عمل میکنن. آیا رئیس هیاتمان آیا کلیسا سرват مرد کلیسای شماست؟ آیا قدرت منترین شخص کلیساست؟ آیا آرزو داشتید مردی سرват معتبر و قدرتمند رئیس هیئت منای شما باشه این رفتار شمعونوار است و پتروس به طور قطع میگه که این رفتار غلطی است این الگوی زیبای دیگری هست که در کتاب اعمال میبینی الگوی دیگر الگوی شفا است در کتاب اعمال هم مانند اناجیل تاکید شدیدی بر شفا شده حدود یک سوم از خدمات عیسی در اناجیل مربوط به شفا بوده این رو در بررسی اناجيل دیدیم عیسی خدمتش رو با بیانیه ناصره شروع کرد و گفت روح خداوند بر من است و مرا را کرده تا به بینوایان مجدده هم مرا فرستاده تا آزادی اسیران از و بینایی کوران و رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم و بعد او را می بینیم که در عمل هم همین کار رو کرد وقتی ما بررسی کتاب اعمال رسولان را شروع کردیم گفتم که میتونیم به این کتاب اعمال مسیح قیام کرده توسط رسولان هم بگیم همون مسیح که حدود یک سوم وقتش رو صرف شفای مردم می کرد امروز هم توسط رسولان شفا میده و ما باید انتظار داشته باشیم که در این کتاب نیست تاکید بر روی شفا رو ببینید. گفته شده که وقتی پتروس از جاده ها عبور می کرد، مردم بیمارانشون رو در مسیر او قرار میدادند چون سایه او بر هر کسی که بیمار بود میافتاد شفا پیدا میکرد. این تصویر بسیار بسیار زیبایی است. فکر اینکه سایه یه نفر که عبور میکنه میتونه باعث شفای بیماران بشه چیز خارغعاده و واقعا زیبایی هست اما این در مورد پتروس چیزی بود که واقعیت داشت و در عمل مردم شفا پیدا می‌کردند. تاکید فوق العاده بر شفا در خدمت همه رسولان شده در اعمال سه پطرس و یوحنا در راه رفتن به معبد هستند. مردی هست که نزد دروازه زیبای معبد نشسته و چهل سال هست که لنگ مادرزاده در طول تمام زندگیش کسی او را حمل کرده و او را نزد دروازهای موسوم به دروازه زیبا گذاشته و او در اونجا از ره گذران و کسانی که وارد معبد می شدن صدقه میخواسته وقتی پتروس و یوحنا به معبد میرفتن این مرد اونجا با اش حضور داره. پتروس به طرف او برمیگرده و به او میگه به ما نگاه کن او فکر می کرد که میخوان سکی بهش بدن و به پتروس و یوحنا نگاه میکردم اما پتروس به او میگه من طلا و نقره ندارم اما آنچه دارم به تو می دهم. به نام ایسای مسیح ناصری به تو دستور می دهم بلند شو و راه برو. آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پاها و قوزک پاهای او قوت گرفتند. من معتقدم که این فکر بسیار جذابیه که کلیساهای امروزی بسیار ثروتمندند راستش خیلی از کلیساها هستند که ثروتشون قابل اندازهگیری نیست چون که خیلی دارن. شنیدم که یکی میگفت امروز کلیسا نمیتونه بگه من طلا و نقره ندارم اما در عوض این رو هم نمیتونه بگه بلند شو و راه برو حالا پتروس یه سکه هم نداشت هیچ پولی نداشت او گفت طلا و نقره ندارم اما چیز دیگه ای دارم و اون چهره که دارم به تو خواهم داد در نام عیسی مسیح ناصری بلند شو و راه برو و این مرد بلند شد و راه افتاد و شکی در این باره نبود کتاب مقدس میگه او جست و خیزکنان و همدگویان وارد معبد شد. او در تمام طول عمرش راه نرفته بود. چهل سال لنگ بوده و با این حال وارد معبد میشه و جست و خیزکنان به پرستش خدا مشغول میشه. این شفا هم مانند شفایی که عیسی در کنار حوض بیت هستا در باب پنج یوحنا به اون مرد لنگ داده بود، شفای استراتژیک بود که به رسولان فرصت خارق ای میده که انجیل رو موعظه کنن. این بخشی از عملکرد کرده کلیساست که دنیا نمیتونه اونو انکار کنه. مقامات مذهبی وقتی دیدن این مرد عامی ماهی گیر در کلیسا موعظه میکنه، به وحشت افتادند. ما میخونیم که فریسیان و صدوقیان خیلی از دست رسولان خشمگین بودند، مخصوصا وقتی شنیدند که رستاخیز عیسی را موعظه میکنند. فریسیان ارتدکس بودند و حداقل به لحاظ اقلانی به کتاب مقدس باور داشتند. صدوقی ها اون دوره بودند. با وجودی که صدوقی ها به چیزهای خارغعاده و یا معزه رستاخیز باور نداشتند اما اونها هم سعی میکردن رسولان رو دستگیر کنند و موعظه کردن اونها رو ممنوع کنند اما چیزی بود که نمیتونستند ان کنند. و اون این مردی بود که جست و خیز کنند در همه جای معبد خدا رو میپستی همه میدونستند که او چهل سال بود که نزدیک دروازه زیبای معبد مینشسته و لنگی بوده که امیدی نداشته و حالا او در حالی که جست و خیز میکنه داره خدا رو در معبد میپرسته هیچ کس این اینو انکار کنه اونها از هر راهی که میتونستن سعی میکردن به خدمات رسولان خاتمه بدن اما دائما با این حقیقت مواجه بودند که رسولان معجزه بزرگی به ظهور رسانده بودند و اون معجزه معجزه شفا بود وقتی خدمت شفا رو در کتاب اعمال ملاحظه میکنید که یکی از الگوهای کلیسای عهد جدید بوده میبینید که در ریشه اون خدمت شفا چیزی هست که فراتر از چیزی بنیادیه. شما عطای خارق روحالقدس روح القدس رو در کلیسای عهد جدید میبینید. وقتی کتاب اعمال رو میخونید، یادتون نره که قدرتی رو که به کلیسا داده شده ملاحظه کنید. فقط به خاطر قدرتی که به کلیسا داده شده، شما عمل کردی دارید که توسط کلیسا به شما داده میشه. بخشی از اون عمل‌کرد شفاهای خارق العاده الهی بود. وقتی کتاب اعمال رو میخونید این الگو رو فراموش نکنید. این درس اونقدر مهیجه که من اصلا دلم نمیخواد که اونو تمام کنیم اما مجبوریم چون که وقتمون به پایان رسیده از شما دعوت میکنم در جلسه آینده در ادامه بررسی کتاب اعمال رسولان با ما همراه باشید تا دیدار بعدی دعا میکنم فیض مسیح با شما و مسیح روح القدس بر شما باقی بمونه آمین ما نباید هدف اصلی رو فراموش کنیم که همون بزرگ است معمولیت یعنی سازی. خدا بیشتر علاقمند به شفای روحانی هست تا شفای جسمانی. چشمان روحانی میتونن باز بشن و حقایق روحانی رو ببینن. گوشهای روحانی باید باز بشن تا حقایق کلام خدا رو بشنون. دایما اینه که حتی امروز او از این درس استفاده کنه و چشمان روحانی زیادی رو باز کنه و حتی در امروز شما رو تشویق کنه که با شجاعت پیام او رو با قوت در نام عیسی مسیح اعلام کنید تا برنامه بعدی امیدواریم از این حقیقت لذت ببرید که او شما رو دوست داره و برای زندگیتون برنامه ای داره بخشی از اون نقشه اینه که شما محبت اون رو با دیگران تقسیم کنید امیدوارم خدا به فراوانی به شما به خاطر اطاعت از اون برکت بده